بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین از و سلام علا نبی یعنی و آله تاهیر سلام و خسته نباشید خدمت شما دانشجویان عزیز ما در بحث بلاغت عرض کردیم که یه مقدمه ای رو خدمت شما خواهیم گفت و این مقدمه رو شما به عنوان جذوه پیش خودتون دارید چون مقدمه‌ای که در کتاب البلاغت الواضع هست هم به شکل نسبتا طولانی نوشته شده هم یه مقداری درهمه و کامل و شسترفته نیست چون مقدمه بحث هم هست بحث اصلی نیست ما این رو به شکل کامل جزء به گونه به شما میدیم بعد از اینکه شما مبحث رو کامل فهمیدید وارد بحث خودمون از اول تشریح میشیم یعنی در واقع از مثلا فرض کنید دو جلسه دیگه درس اخلاق شروع شد این مقدمه است گفتیم توی مقدمه ما سه تا محور رو مورد بحث قرار میدیم یکی تعریف فساحت دوم تعریف بلاقت و سوم اصالی بلکنان یعنی اسلوبها و سبکهای های سخن سخن است. البته این مباحثی که ما داریم در با فساحت و بلاقت و تشبیه و مجاز و کنایه تا آخر تهم با شما میکنیم درسته که مثال هاش به عربی میگیم و در زبان عربی داریم چون رشتمونه بحث میکنیم ولی ها مباحث بیان و نطقه و سخنه همون به تعبیر قرآن علمه و بیانه و تو فارسی هم همینه یعنی فصاحت تعریفش در فارسی همین یک الان ما در اینجا بحث میکنیم بلاغت همینطوره اسلوب های سخن همینه بعد وارد تشبیه و اقسامش میشیم. فقط مثال فارسی باشه گرامر میشه فارسی مثال عربی باشه گرامر میشه عربی خوب یادتون باشه من گفتم که فصاحت در لغت به معنای بیان و ظهور مسته الفساحت و یعنی البیان یعنی از ظهور درست شد؟ حتی تو خود قرآن آیه هست میگه و اخی موسی میگه و اخی هارونا و حوه منی لسانه و اخی هارونا و داداش من هارون هو افسهو منی لسانه او روشنتر واضحتر از من هست زبانش از جهت زبان از من زبانش واضح تره. یعنی مردم زبانه اونو بهتر میفهمن. پهمن افسه و منی یه یعنی افسه اینجا به معنی عبینه به معنی ازهره لغفیه. نه که اون فساحتش از من بیشتره نه یعنی زبونش یه یعنی جوریه که این مردم زبون اونو بهتر سرشون میشه. یعنی عبین و منی منتقن ازهر و منی قولن فرخش بشه اینها خیلی راحت تر فهمیده بشه بعد گفتیم که این کلمه فسوحه به معنای ظاهر شد آشکار شد میگن فسوحه لسانو یعنی اینکه زبان روشن شد اون که میخواد رو میتونه بفهم فسوحه سوییو یعنی بچه زبانش باز شد این لغت بود فسوهن یفصوه فساحتن درست شد؟ اما اونی که مورد نظر ما هستش که باید بدونیم فساحت در استلاقه که فساحت در علم بلاغت به چه معناست؟ نزد بلاغی ها با توجه به این که فساحت لفظ مشترکه یعنی یه چیز نداریم که بهش بگیم فساحت عبارت از دزل. که بتونیم تعریفش کنیم گفت فساحت به سه چیز اطلاق میشه گفتم مثل لفظ شیر میمونه که لفظ مشترکه شما شیر تا دارید شیر آب دارید شیر درنده دارید شیر خوراکی دارید و خب میتونی یه تعریفی بکنی که شامل هسته تا شیر بشه و شامل غیره اون نشه اون تعریف نمیشه ولی اگر بیای اول شیرو تقسیم کنی بعد اون موقع هر کدوم از اون مقسم ها هر کدوم از اون قسم ها رو میتونی بگید تعریف کنی بگید شیر سه شیر آق شیر درنده شیر خوراکی بعد هم هر کدوم رو شروع کنی به تعریف کنیم. فساحت هم تو اصطلاح بلاغیها سه قسمه. ما یه فساحت در کلمه داریم. یه فساحت در کلام داریم. یه فساحت در متکلم. نمیشه یه تعریفی بیاری که شامل هر ستا بشه. فساحت در کلمه و کلام و متکلم هر ستا شامل نداریم همچین چیزی. چیزی نمیشه ولی اگه بیایم بگیم فصاحت لفظی است که به سه شکل اطلاق میشه فصاحت در کلمه یعنی کلمتون فصیحتون کلامون فصیحون متکلمون فصیحون اون موقع می شهر کدوم رو تعریف کرد یعنی کلمتون فصیحتون عبارت است, است. کلامون کلام فصیحون عبارت است از متکل فصیحون هم عبارت است, است. میشه هر کدوم رو تعریف کرد پس ما اول تقسیم کردیم. شد کلمتون فسیحتون کلامون فسیحون متکلم فسیح پس فساحت وصف میشه برای کلمه و کلامون متکلم آه. و ما هر کدومش رو مجزا تعریف میکنیم خب اول باید قاعدتا از چی شروع کنیم؟ فساحت کلمه چون کلمه جزء کلامه کلمه و کلام بعدش متکلم پس اول فساحت در کلمه فساحت در کلمه چیه؟ فساحتل کلمته تعریفش فساحتل کلمته یا الکلمته و الفسیحته فساحت در کلمه یا کلمه فسیح تعریفش کلمه ای را فسیح میگویند یا فساحت در کلمه عبارت است از یک یک کلمه خالی باشد از تنافر حروف کلمه خالی باشد از تنافر حروف اگه بخوایم عربی بگی نمیشود تول الکلمته یک خلوصها خلوص یعنی خالی بودنش خالص بودنش خلوصها من تنافر الحروف خلوص اون کلمه اون کلمه خالص باشه از تنافر حروف تنافر حروف یعنی چی یعنی حروف و اون کلمه با هم اونس داشته باشن معنوس باشن از همدیگه نفرت و فرار نداشه سنگین برای زبان نباشه خب اگه تنافر حروف نداشته باشن کلمه چی میشه میشه رقیق میشه گوارا میشه سلیس روان میشه آسان بر زبان میشه بدون سنگینی بر گوش شنونده یعنی گوینده را حتی لفظ میکنه شنوندن به گوشش میخوره خیلی لطیفه اکثر کلماتی که ما استفاده میکنیم همینطوره مثل کلمه زرب و زد اسدون شیر کلمه چه فعل چه اسم چه باید خالص باشه از تنافر گروف شد اسد مثلا خوبیه لیس خوبه زرقام به معنی خوبه اینا میبینیم استفاده میکنن هیچ مشکلی هم توش نیست تنافر نداره اما بعضی کلمات هستش که تنافر در حروف دارن یعنی حروفش می یه جوریه که نمیشه تلفظ خوب بهش کرد به زبان خوب نمیچرخه شنونده هم وقتی میشنوه به گوشش بگید سنگین میاد گوارا نیست بر زبان گوینده گوارا نیست در گوش شنونده خالا این تنافر در حروف بقول آیون یه کلی مشککه یعنی یه تولرانس داره یه تون داره از ضعیف شروع میشه کم شروع میشه تا شدید یه موقع کلمه تنافر حروفش خیلی شدیده خیلی شدید تعارف رو مثلا میگن یک عربی آمد میهمان کسی شد او بهش گفت چطور تو چه کردی چطور چی شد گفت ترک توها رهاش کردن ترآ میچرد ال خو داره میچره خو خو, خو خواه های دو عین این عین این خواه خواه این یعنی علف نبات، علیکلت ان لباد گفلش کردم داره این علف های بیارون رو ولی شما اگه بخوای بگی خواه خواه چهار تا حرف حلقی پشت سر هم دوتا هم زمه داره مگه به این سادگی میشه بگی خیلی کلمه داره سقنه تنافر حروف. دیدید بعضی موقع کلماتی رو میدن اینو رو میتونید تو بگی به یه نفر کلمه یه جوری مثلا دوتا شین پشت سر همه دو دوتا سین پشت سرهمه یه سادوزاد، و زاد پشت سرهمه نمیشه تلفظ که سخته اون که اون میگه ممکنه که دو تا سه که اونو بگه اشتباه کنه که میشتوند کلمه مثلا. خب یه موقع خیلی خیلی تلاف رو, رو داره و زنه خو خو یه موقع کمتره مثل مثل فدو و کس فدو کس یعنی اسد شیر همونطور که اسد برای شیر وز شده لیس برای شیر وز شده زرغان برای شیر وز شده اقلب با قین برای شیر و سوی نعمه تنافر حروف نداره اما فده و کس هم داره اما کس. کس. هم. اما به اندازه حق نیست قلاصه تنافر و داشته باشه چه یک ذره چه صد در صد به فساحتی کلمه است اید عیب اید حالا یه مسخال باشه یا یه خربار پس اولین شرط کلمه فسیح چی بود که اون کلمه از تنافر در حروف خالص باشه یا بگو تناسب در حروف داشته باشه صد درصد صد درصد در تناسب حروف داشته باشه یک دو کلمه خالص باشه، خالی باشه، از گرابت، گرابت ها خلوصها منال گرابه. اولی خلوصها من تنافر دوم خلوصها منال گرابه. گرابت نداشته. یعنی چی؟ یعنی معنوس باشه. معنوم سطول استعمال باشه خب قلوص ها من یا کونها معلوفه استعمال بعضی کلمات هستش حالا یا به دلیل اینکه سابق برین استفاده می شده بعد از دایره زبان رفته بیرون یا به حد دلیلی آمه اهل سخن اینو قریب می دونن. یعنی میخوره به گوشون نمی هنوز این کلمه غریبه کلماتی فسیه هستش که معنوس باشه تا میگی من الان دارم صحبت می اگر از کلماتی استفاده کنم که شما معنای اون براتون قریبه. ای مجبور شد بری به کتاب لغت مراجعه کنی به این. خب اینم غلطه. این هم کلام حالا قرابت خب گوش کنید معنوس باشه یعنی که راحت مردم می فهمن. قرابت ممکنه منشأش فرق کنه یه موقع قرابت بر اساس اینه که این مثلا در قرن هفتم استفاده می شده مثلا در زمان ها سعدی بعدن دیگه به مرور این کلمه رفته کنار استفاده نشد ولی بله الان من استفادهش بکنم شما میرید مراجعه میکنید به کتاب لغت میگه بله این به این بنا سعدی هم استفاده کرده تو قرار نه هفته میگه خوب میفه این قرابت یه موقع قرابت منشهش اینه یک کلمه یه که لفظ مشترکه لفظ مشترکه خب این کلمه که لفظ مشترکه به کار برده در اینه براش نزاشته همیشه قرابت مثل لفظ شیر که بود شیر بفتما نمیدونیم کدوم شیره اگر قرینه براش کساش گفت در جنگل شیر دیدم اون میفهم شد یه موقع هم قرابت از این جهت پیدا میشه که نفس مشترکه و قرینه براش وضع نگردیم و اون خلاصه قریبه یه موقع بازمونی که مثلا تو کتاب لغت ما دنبالش بگردیم یه موقع باز میکنیم المنجد رو یا هر کتاب لغتی رو سریع پیدا کنیم یه موقع نبا باید انقدر بگردیم کتاب لغت سحاه جوهری و قاموس فیروز و کتاب لسان عرب ابن منظور و کتاب های قطور تا یه لغت رو پیدا کنیم کم زیاد داره علایه حال کلمه فسیحه که راحت فهمیده بشه یه ذره مشکل دوش نباشه کاملا معنوس باشه غرابت نداشته باشه خلوص و حاملن حالا یه نکته یه نکته این تنافر حروف که تو اول گفتیم و قرابت که توی دوم گفتیم میارش کیه میارش کیه حالا مثلا فرض بفرمایی رایانه رایانه یک کلمه است خب ممکنه مثلا فرض بفرمایی پیر زنی پیر مردی یا آدمی که دویه روستاییه این برمان نفهمه رایانه یعنی کامپیوتر رای یعنی عقل رایانه یعنی آلت. این برد فرض شده برای کامپیوتر ندارد میارش یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست میارش من و شما نیستیم عامة اهل سخن خوب لغت رو گوش کنید عامه اهل سخن یعنی پیکره صاحبان اون زبان فارسی زبانان عرب زبانان معیاری نفر و دونامون ممکنه یه حال دایره بود. لغتش کم باشه ولی عامه یعنی اخبار که میگه خب برای 80 میلیون نفر میگه یعنی 80 میلیون نفری که داره اخبار رو گوش میکنن فقط 2.7 میلیون 78 میلیون میفهمه بچه‌های لوات. حالا یه دو سه میلیونی کم و بیشتر می تولا هرچقدر ممکن این کلمه رو به هزشون معناش رو و اون با بپرس. اون سطحش رو باید عامه اهل سفره. تنافر هم همینطوره. ممکنه یه نفر زبانش سفت باشه هر کلمه بهش میگی راحت میگه. این نمیتونه بهش بگیم که تو هر کلمه‌ای رو میخواد بگو. میار اون نیست یا یه نفری زبانش خیلی شلووله کلمات رو نمیتونه درست سابی بگه هر کلمه عادی ام بهش میگی ایدالوژی رم میگی بگو نمیتونه بگه میار آدمانیست هم معیار آمه احل سا آمه احل سخند یا بهش میگن زوغ سلیم اون ای که به این زبان صحبت میکنه خودش یک موضوعیت یه حیات داره یه پیکره است نزد اهل سخن تنافر نداشته باشه نزد اهل سخن قرابت نداشته باشه کم یا زیادشم مخل چه قرابت چه تنافر خلا قرابت منچهش ممکنه عدم استعمال باشه ممکنه لفظ مشترکی آورده قرینه نگذاشته؟ خالص باشه خالی باشه از مخالفت قیاس سرفی مخالف قیاس سرفی نباشه قیاس یعنی قاعده سرف که مال زبان عربی خالص باشه از مخالفت قواعد سرف یعنی قواید صرف رو تایید کنه مطابق قواید صرف شد پس خالش خالص باشه از مخاید یعنی اینطوری میشه خلوصها من مخالفت قیاس سرفی خلوصها من مخالفت قیاس سرفی یا یعنی بگو موافق باشه با قیاس سر، با قاعده سرف موافق باشه شد یعنی مثلا صرف میگه که شما اگه قبله داری قبله و حرف علی متعلق ما مفتوخ قلب به علف میشه میشه قاله پس قاله فسیه چرا چون مطابقه با سر حالا اگر یه کسی آمد گفت قبله مطابقه با خایده صرفی نیست مزارج یقولو میگه این یقولو بوده یقولو بروز یم سرو یق ولو زمله برواق سبیل بوده داده به حرف ماقبلش قبلش که سعی و ساکنه شده یقولو راحت تر این یقولو الان موافق با قیاس است حالا اگر یکی موقع گفتش یق ولو قاعده سرف باید اونو رو تأیید سرفی گرامر واجه در زبان اونو تأیید کنیم خب؟ حالا اینجا ما یه تفسره میزنیم توی هر زبانی چه عربی چه فارسی چه زبانهای دیگه بعضی جاها مقدار کمی یعنی نود و هفت درصد هشت درصد مطابقه با قواهید صرفی هستن کلمات اما پیش همون صاحبان سخن پیش همون صاحبان سخن در حد یکی دو, دو درصد سه درصد به طور غیر قیاسی یعنی بهش میگن سمایی به طور غیر قیاسی که بهش میگن سمایی دیده شده که کلمات برخلاف دیاز سرفی میاد کلمات برخلاف دیاز سرفی میاد چند تا کلمه اصلا بهشون میگن مثلا کلمات بی بیقایده اینایی رو که خود صاحبان سخن، خود وارسان اون کلام بیقایده آوردن اینا چه میگه اینها اون بیقایده هاشون فزیحه. اونجا باید ما این همون ها کار اون دوست درصدی که بیقاید استفاده شده اونها باید همون بیقاید استفاده بشه. فسیحونه. مثلا یه مثال بزنم مالا یه مثال میگه. شما تو سرف خوندید میگن اگر مازی سلاسی مجرد بر وزن فعله باشه، فعله. وا الفعل یا لام الفعلش حرف حلقی باشه عین یا لام حرف حلقی باشه مثل سعل یعنی پرسید مثل فتح یعنی قوشید عین یا لام الفعل حرف حلقی باشه اگر ماضی بر وزن باشه مضارعش بر وزن یفعل میون مثل قرا یا قرأ ساأنا فتحه یفته فتحا منع يمنعوا قايده شد هر چی بر وزن فعله هست اگر عین الفعل یا لام الفعل الف حلق باشه مزاره بر وزن يفعل می آید این قاعده صرفی است اما ما نگاه میکنیم توی کلام عرب فعلی مثل ابا ابا یعنی ابا کرد نپذیرفت زیرفت تو ابا کردن یعنی بار نرفتن ابا که تو قرآن هم داریم ابا وستکبر امون شیطان این ابا است مزارش آمده یا ام؟ یا یعبالله الله هم هست یعبا عبا یعبا خب این نواد این بیاد چون عبا این الفل و لام الفه حرف حلقی نیست فاولفلش حرف حلق این مثل رما عبا مثل رما باید بیاد یرمی این هم باید بشه یعبی حالا که شده یعبا عبا یعبا این عبا یعبا شازه می یه دونه رو که عرب اینطور گفته همین شازه خب پس بنابراین پس این هر چی که مخالف با قوائد چی آمده؟ بگید سرفی آمده پیش صاحبان سخن هرچی که مخالف با قواعد صرفی آمده پیش صاحب سخن اون همون مخالفه است ببینید گوش کنید ما وقتی که بحث عربی رو داریم بحث میکنیم اون عربی خالص حجازی که به عنوان عربی فسیح قرآنی هست الان مورد ملاک ما مثل فارسی که فارسی اصیلی کرده الان ها، لحجه ها و موارد دیگه اونا با خودشون مقایسه میشه یعنی با خودشون یه گویشی با گویشه این گرامره و ما گرامر رو داریم میخونیم رو شما میتونید ببرید مقایسه کنید یعنی اگر بردید با ترکیه استانبولی با ترکیه استانبولی سازگاریش میدید اگر آوردید با ترکیه خودمون ترکیه آذربایجانی با ترکیه آذربایجانی تطبیقش میدید گرچه هر دو زبان ممکنه ترکی باشه یه ریشه داشت ما بحثمون اینجا روی کلی کاره روی لهجه روی نمیدونم از این نوع مساهل نیست قاعده کلی زبان پس یک تنافر حروف نداشته باشه دو قرابت نداشته باشه سه مخالف قیاس صرفی نباشه که ما یه دونه تفسره زدیم گفتیم اگر خود صاحب سخن واضع مخالف قیاسی آورده اون مخالف قیاس رو ما میذاریم رو چشممون اون فسیه. می سه تا شد چهارو خلوصها منل کراحت فسام خلوصها منل کراحت فسام یعنی اون کلمه خالص باشه از کراهت یعنی ناخوشایندی به سمع یعنی سمع مخاطب قلوس ها منع کراحت به سمع خالص باشه از اینکه در گوش شنونده ناخوشایند باشه ببینید بعضی از کلمات هست لحظی کلمات هست از لحاظ تنافر حروف تنافر حروف نداری از لحاظ قرابت قرابت نداره محنوز میگی می همه میفهم از لحاظ مخالفت قیاس سرفی هم تو قایده ای ساخته شده. دوش شد اما این کلمه آمه اهل سخن، مردم کوچه و بازار همه این کلمه رو میشنوند اینا همچین به دلشون نمید. آدم های صاحب این زبان از این کلمه استفاده نمیکنن تو گوششون گوش یعنی این کلمه اعتباری در نزد اونها به عنوان یک کلمه دلچسب ندارد. موجود هم آشناست شش اساس اون ذوق اون احساسی که نسبت به این کلمه دارن احساس و خوبی نیست حالا مثالی که بزنم مثلا مثالی که بخواهیم توی این مطلب داشته باشیم که شما بتوانید تو ذهنتون بیارید که کراهت در سمده مثلا صحاب یعنی چی؟ از صحاب یعنی عبر المزنح یعنی چی؟ یعنی عبر الغیم یعنی چی؟ یعنی عبر عبر معانی زیادی داره یکی از اون معانی که یکی از اون الفاظی هم که برای عبر وضع شده باعقه. باعق باعق با این قف اگر یه نفر بگه رعی تو فی السماه رعی تو مزنتن فی السماه رعی تو قیمن قیومن فی السماه اما میگه رعی تو با آخن فی السماه تو کلمش مشکلی نداره مثل بزاغ میمونه مخالف قياس صار هم شده باید. اما اینو استعمال نمیکنه، خوشون نمیاد ازش کسی اینو به کار ببره این رو بگید گرفتی شد نه تنها اینا مثلا فرض کنید مثل کلمه جرشا هل جرشا. یعنی نفس همین کلمه ال جرشی نوشته میشه جرشا خوندار. تو شعر متنبی اومده در مورد سیف و دوله الجرشاه خوب اگه گفته بود کریمال نفس چقدر خوش نمید ما رو نمید اشکالی هم توش نیست یعنی بگردیم دنبال اینکه که ای به دیگری براش پیدا کنیم نیست این خلوصها ها منال کراحت فسر یعنی مخاطبین گوششون این براش گوشنواز نیست حالا مثال من میخوام یه چیزی که نزدیک ببینید مثلا ها میخوام بگم این میخوام با نزدیک بزنم مثلا فرض کنید که من بگم بگم مثلا اوضاع اقتصادی من نابسامان اوضاع اقتصادی من خوب نیست مورد قبول نیست مورد پسند نیست و هر چی از این جور الفاظ به ببرم شما میشنوید اما اگر اوضاع اقتصادی من سه سه شده مم؟ ممکنه به کارم ببرن اینو از لحاظ های مختلف اما میکنه اوضاع اقتصادی سه شد، این کراحت در سمع داره یعنی عامه اهل سخن شما اگر به عنوان یک نفر آدم داری صحبت میکنی این برای شنونده شنوندی دیل چسب نیست. پس چند تا شرط شد؟ چهار تا. هر کلمه ای که این چهار تا عیب را نداشته باشد، یا مخالف این چهار تا را داشته باشد، میشه کلمه فسی. خالص باشه از تنافر حروف. چه کم چه زیاد. یعنی تناسب حروف داشته باش. خالص باشه از غرابت. چه کم چه زیاد یعنی معنوس باشه استعمالش قرابت در مقابل اونسه قرابت طول استعمال نداشته باشه یعنی معنوس استعمال باشه گفتیم این دوتا میارش هم عامه اهل سخنند و کل ذوق عربی شاهبان اون زبان میان من و شما و یک نفر و دو نفر گفتیم که مخالفت با ساختار صرفی عربی نداشته و خلوص من مخالفت قیاس صرف یا بگو موافقت با قیاس سرفی داشته طبق قاعده سرف ساخته شده داشته حالا اگر یک موقعی لفظی بر خلاف قاعده سرفی ساخته شده اونجا بله ما همون خلاف قیاس مثلا فضا مثال یه مثال هم بزنم که اونجا عبای عبا رو مثال زدم یه مثال دیگه هم بزنم مثلا کلمه استقامه استقامه یستقیم و استقامتن یعنی استاد مقاومت تو قرآن هم داریم سوم استقام الذین قالوا آمنا ثم استقامو ایمان رو آوردند و بعدم پاش باایسادند ثم استقام درست مثل استعان یستئینو که داریم و ایاک نستعین خوب اعلان شده دیگه نلخونده. اما یه کلمه هست مثل استحوزه باهی جیمی زال استهوزه یستهوزو استهوازم این کلمه اعلال نشد استهوزه یعنی استولا چیره شد مسلط شد حالا من میتونم این کلمه استهوزه رو بگم استهازه بگم طبق خیاس صرفی نه نه اینو عرب همینطوری بدون قاعده اون صاحب این سو زبانه حتما خودش حکمتی داشت برخلاف قاعده اینا بود لذا تو قرآنم داریم استحوذ علیه او شیطانو استحوذ علیه او شیطان یعنی چی یعنی شیطان بر اینها چیره شد استحوزه گفته استحوزه رو بگیم استحازه اعلال کنیم موافق قیاس سرفیش کنیم میشه غیرفسی استقامه رو اگر استدغمه کنیم میشه غیرفسی استقامه باید موافق قیاس صرفی استفاده چون عرب اونطور خواسته استحوزم از اون یه درصد است باید مخالف باشه بعد گفتیم که خالی باشه از کراحت در سمع خلوصها من الكراهه في السمع گفتیم منظور از سمع هم یعنی گوش شنونده منظور از گوش شنونده یعنی باز اامه اهل سخن اامه اهل سخن این نفس رو نمیپسندند درست شد پس چند تا شد 4 تا خلوصا من تنافر الحروف خلوصها من الغرابه خلوصها و حامن مخالفت القیاس سرفی خلوص و حامن کراحت فسن شرک شروع که گفتم. گفتیم اینها است برای فساحت کلمه حالا هر کلمه که شما تو زبان فارسی برای این چهار تا عربی ترکی هرچی می خود برشون. چه کلمه این فسیح هست این چهار تا شرط شرط, شرط فساحت ملاکش حالا بعضی از اینها رو بعضی از اینها رو شما با علمی که میخونید یا مثلا سرف رو میری علمش رو میخونی علم سحر یاد میدیدی خب اون شرط سهبان رو میتونید شرط اول تنافر و حروف نداشته باشه غرابت نه اینا رو باید با کتاب لغت و معاشرت و ممارست با اهل سخن و صاحبان سخن بفهمید همینطور کراحت برسن گرچه بعضی از کتب لغت اشاره کردم که این مثلا فرض و فرمایت که در امه مردم استفاده نمیشه این در بین مثلا یه تعداد خاصی بایدن استفاده دیگه قابل پذیرش نیست ما میتونیم این رو بفن خب بیاییم سر فساحت در کلام حالا فساحت کلمه فهمیدیم؟ فهمیدید فساحت در کلام چه شروطی داره خب یک دسته میکنیم اونم راحت متوجه میشید فساحت در کلام شرط اولش شرط اولش اینه تمام کلمات آن فسیح باشه یعنی فساحت کلمه در فساحت کلام شرط این فساحت کلمه که خوندیم شرط شرط داشت تمام کلماتی که در یک کلام هست آه. تمام کلماتی که در یک کلام هست همه این کلمات باید فسیح باشه اگر یک کلمه غیر غیرفسیح در یک کلام باشه اون کلام دیگه فسیح پس شرط اول چی شد؟ تمام کلمات آن بگید فسیح باشد تمام کلمات آن فسیح باشد یعنی مفرداتش باید فسیح باشد دوم شرط دوم شرط دوم اینه که تنافر کلمات نداشته داشت یعنی خلوصها من تنافر کلمات تنافر کلمات نداشت داشت. یعنی چی؟ بعضی کلمات هستن اگه کنار هم بذاریشون ها؟ خودشون تنها تنها تنها استفاده بشن مشکلی نداره. اما دو تا سه که کنار هم واقع میشه است. همچین سفت میشه کلام همدیگه رو رد میکنن، تنافر دارن، از همدیگه نفرت دارن. کلام نامعنوس میشه، یعنی کلام دیگه اون سقل خودشو پیدا میکنه، سنگین میشه. دیدید بعضی موقعا میگن نمیدونم دایی چایی داغه خب این دایی چایی داغ اینا هر کدوم کلماتش به تنهایی با اون میار خودمون بخوایم به سنجین اما کنار هم که واقع میشه سخت میشه آمه اهل سخن اینجا احساس سختی میکن باز میار یه نفر دو نفر نیست ممکنه یه نفر انقدر زبانش صفت باشه که بتونه ده بارم اینو بگه ولی آمه مردم چنین نیستن یا اصلا یه کلامی فسیحه آمه اهل سخن اونو راحت تلفظ میکنن هیچ کلماتش با هم تنافرنه حالا یه نفر ازش زبونش لکنت داره یا سخته استحوز علیه ما شیطان رو سخت میکنه اینم باز ملاک نیست آمه اهل سخن از چینش کلمات در کنار هم احساس تنافر نمیکنه. خالص باشه از تنافر کلمات شد؟ حالا اینجا باز این بحث داریم تنافر کلمات باز مقداری کم داره ممکنه یه مسخال باشه ممکنه خیلی خیلی زیاد باشه بعضی جمله ها رو دیدید؟ ها؟ یه جوریه که شما مثلا چهار بار که میگی سخت میشه سه بار که میگی سخت میشه بیانرا هم بازاش اصلا دو بارم نمیشه بگی بازدی یه بارم نمیشه جملاتی که میاد کم یا زیادش فرقی نمیکنه نزد اهل سخن دارای تنافره مثلا شعر امر القیص تو و معلله مبداه روح مستش زرات و نللول مستشی زراعتون همه میگن اما میگن این کلمه حروفش با هم دیگه نمیسازه این مال قبل بوده حالا کلمات کنار هم دیگه گای اوقات کلمات کنار هم مثل این حروف کنار هم کم و زیاد داشت گای اوقات کلمات کنار هم دیگه یه جوری میشه که سخت میشه اما نه خیلی سخته یه موقع نه خیلی سخته خیلی سخت. دل شد؟ یه شعری رو مثال میزنن میگن قبر و هربن میگن یه نفر به اسم هرب در بیابان کشته شد سا بعد یه شعری هم گفتن بالای سرش گذاشتن بعد گفتن این جن کشته این شعر هم جن گفته و چون جن گفته شعرش اینطوریه میگه وقبر و هربن به مکان قفرو یعنی غوه قفر میگه قبر و حربن به مکان قفر قفر یعنی بیا با علف قفران میرونی چی نداره این مصرش خشنگی و... قبر و حربن قبر آقای هر به مکانن یعنی فی مکانه در مکانیست قفر بیا با علف این مشکلی نداره قشنگ همه کلماتش به هم چهت میشه اما مصره دومش. و لیس و لیس قرب قبرن قربن قبرن و بین قبرن قبرو این نره دومش قرب لیس قربه قربه خبر لیس است اضافه شده به قبر قبر به حرب اون قبرون هم اسم مؤخر لیساس تو نظر اعرابی درسته یعنی و نیست نزدیک قبر حرب قبری یعنی قبر. قبر آقای حرب در یک جای بیا و علفیه نزدیک قبر و قبری هم نیست یعنی کسی هم اونجا تا حالا نمورده که قبر دیگری هم بیده میشه آدم که بیده نمیشه قبر دیگریم هم نیست و لیزه قربه قبر هربن قبر الان کلمه قرب مشکل داره نه قبر مشکل داره نه حرب مشکل داره نه, مشکل داره؟ نه. هیچ کدوم از این کلمات مشکل ندارن همه تو قرآن هم اومده تک تک اما چینشش کناره هم ولیسه و قبر هربین قبرو برای بار دوم با مخابیدی تب, تب میکن نمیشه اینو میگن تنافر کلمات حالا گاهی اوقات ممکنه کم باشه گاهی اوقات ممکنه بگید زیاد باشه آه؟ این الان زیاد بود گاهی اوقات نه کمه زیاد نیست کمتره مثلا این شعر رو نگاه کنید بعضی مقایی شعرهای رو هم براتون میخونم برای خاطر اینجا. میگه کریمون میتونید بنویسید مشکل نداره. کریمون متا امده خو امده خو ام ولورا. ورا وری میریم الورا یعنی الناس چی میشه ترجمهش کریمون یعنی هو کریمون این آقا کریم است. متا امده ها هر وقت من همدش میکنم امده ها همدش میکنم ولورا در حالی که الناس مردم مئی اون بره مصر مئی مردم با من میگه این آدم کریمه هر موقع خوبیاشو میگم همه با من همراه میشن همه میگن بله بله ما هم دیدیم اینطور خوبیاش و اذا معلوم توهو لم توهو یعنی ملامتش میکنم و اذا ما ما بعد از اذا زایده است و اذا معلوم توهو اما موقعی که ملامتش میکنم اذا معلوم توهو لم توهو وقتی لم توهو وقتی وقتی ملامتش میکنم ملامتش میکنم در حالی که تنها وقتی بعدیشو میگم ایشکی نمیاد به من کمک کنه با من همراه بشه ولی وقتی که خوبیشو میگم همه همراه من کریم و متا اندهو امده و ولورا معي و لمتهو بعد الان کجای این مشکل داره میگن اون امده و امده خو دو تا امده و امده هو پشت سر هم اومده هر کدومشون دو تا حرف حلقی ها دارن این دوتا کلمه کنار هم سقل ایجاد کرد تنافر ایجاد کرد سخت شده اما واقعا به اندازه ولیس قرب قبر هر بین قبران نیست فرقی نمی کم باشه زیاد باشه اگر تنافر در کلمات پیدا شد اون کلام میشه غیر حالا معیار برای تنافر هم عامه اهل سخن آمه احل سخن همه مردم وقتی این شعر آقای ابی تمام عبی تمام شاعر بزرگی این شعر عبی تمام کریمان متا امدخ و امدخ رو شنیدن همشون احساس کردن خود تنافر داره معیار عامه اهل سخنه. یه نفر و دو نفر نیست. پس شرط اول شدی، چی؟ تمام کلمات آن بگید. فسیح باشه. شرط دوم. خالص باشه از تنافر کلمات به طور مجتمع. خالص باشه از تنافر کلمات به طور مجتمع. خود الا اول تنافر کلمات شرط دومی که گفتیم شرط اول گفتیم که الا اول همه کلمات آن فسیح داشت شرط دوم تنافر کلمات مجتمهتن نداشت داشت خلوصوها خلوصو من تنافر و کلمات خلوصوها خلوصو بخوره به کلمات خلوص من تنافر کلمات مجتمع خو خب، کلمات به طوری که کنار هم باشن ایجاد تنافر نکن دوم این شرط بود شرط سوم. شرط سوم خالص باشه از زعف تعلیف خلوص هو من ضعف تعلیف خلوص هو من ضعف التعلیف یعنی چی زعف تعلیف تعریفش اینه خالص باشه از زعف تعلیف یعنی مطابق با قواعد مشهور نحو باشه چی گفتم مطابق با قواعد مشهور نه باشه قواید مشهور همه قواهیدیه که شما تو کتاب مبادی جمع کردن و گفتن مطابقه با قواهید مشهور باشه یعنی اون جمهور عرب زبان یه سری قواعدی رو در کلام خودشون دارن که نهاد اونو درآوردن. قایده جمهوره این قواهد مشهوره قایده مشهور اهل سفن مطابق باشه با قواهد مشهور حالا اگر مطابقه با قواهد مشهور نباشه اگر مخالف اصلا با قایده باشه که غلط اون میشه میگه به قول خودمون یلحب و حسباتل حیوانات اون میره میشه صدای حیوانات هیچ چون دیگه کلام غلط ولی اگر ضعف در تعلیف داشته باشه ضعف در قاعده نحو داشته باشه یعنی قاعده مشهور را رعایت نکرده باشه میشه غیر فسیح کلام هست غلط نیست اما فسیح نیست کلام غیر فسیح الان نگاه کنیم یه مثال بزنیم یه مثال این نه چی کار میکنه تو زبان عربی؟ تو قایده شما میگید قایده مشهور میگن حروف و مشبهتون به فیل تن اسم و ترفعول خبره نصب میده به اسم رفت میده به خبر الله عزیزون یعنی فسیه کلام فسیه چرا ضعف تعلیف نداره مطابقه با قایده مشهور نحوه نصبه به اسم رفته به خبر اینالله الله عزیز اما اگر شما نگاه کنید مثلا برید کتاب سمریه مرحوم شیخ بها رو نگاه کنید نجا میگه و نصبه ما لغتون این که حروف مشبهتون بلفیل هم به اسم هم به خبر هر دوتا نصب بدن با نصب بدن هر دو رو منصوب کنن اینم لغتون لحجه ایو خب یکی اگر اومد گفتش اِنَّ زیدن قائمن غلط گفته غلط نگفته تو این قائدهی غیر مشهور بود خب اونش غیرفسی غلط نیست اما اگر اومد گفت اِنَّ زیدن قائمن اولی رو رفت دادون یه غلطه این به سه صدای حیوانات این غلطه قاعده مشهور نحو جایت شده باشه میگن زعف تعلیف نداشه یعنی قوت تعلیف داشته باشه زعف تعلیف میشه قاعده غیر مشهور شد حالا مثال یه مثال دیگه فین میکنه رفع به اسم میده اسم بعدش به عنوان فایل نصف به اسم بعد از اون میده به عنوان مفعول یعنی الفایل و مرفوع و المفعول منصوب این قاعده مشهوره زرب الله مثلا قرآن الله مثلا خدا مثلی یعنی کلام ضعف تعلیف نداره قوت تعلیف داره طبق قایم اما اگر شما برید مثلا کتاب ابن نشانام قتل دار و بل و صدا کتاب نحوی نگاه کنید اونجا میگه یه عدعا از اهل از زبان یه عدده عرب زبان مثلا تاریف بنیته بنی تمیم اینها میان رفت میدن. به مفعول نصب میدن به فاعل فرغا بینه میگن باید فرق باشه پیش اونا فرق به اینه که فاعل منصوبه مفعول مرفوعه حالا اگه کسی اینطوری گفت بعد مثالم میزنه اونجا میگن میگن کسره از زجاجو الحجره کسره از زجاجو چی میفهمن از این؟ از این اینو میفهمن کسره الهجره کسره حجره از زجاجو یعنی سنگ، این سنگ این شیشر شکست ولی الحجره که فائله منصوبه از زجاجو که مفعوله مرفوعه شعرهای زیادی هم از شعرهاشون نبید حالا اگر کسی آمد بر این اساس گفت میشه به که قلط گفتی میگه نه من بر اساس قایده زبان فلان گفتم. اونا من عرب زبانم. صاحب سخنم. اما ما لازم است که کلاممون قوت تعلیف داشته باشه. قوت تعلیف یعنی قول مشغول. دیدید توی کتاب های نحوی می نویسن قول جمهور قول مشغول. این یعنی همون قوت تعلیف. یعنی در مقابلش یه قول اقلیتی هم هست غلط نیست اما فسیح نیست پس دوم، زعف تعلیف نداشته باشی درست شد زعف تعلیف نداشته باشی سوم، وم تعبید لفظی نداشته باشی تعبید لفظی نداشت خالص باشه از تعدید لفظی تعدید یعنی پیچیدگی اقدر یعنی پیچیده کرد عقده یعنی گره تعدید یعنی گره زدن در لفظ گره نداشت پیچیدگی نداشت در شکل لفظش یعنی چی تعدید لفظی نداشت ببینید شما حتما تو نحو خوندید که خبر میتونه بر مبتدا چی بشه؟ مقدم بشه بله خوندید مفعول میتونه بر فائل مقدم بشه بله خوندید مفعول میتونه حتی بر فعل هم مقدم بشه بله خوندید بین فعل و فائل میتونه یه چیزی فاصله کنه بله یه سری امور هستش جایزه در کلام یعنی ساختار سخن باید اول فعل باشه بعد فاعل باشه بعد مفعول به باشه بعد همینطور بقیه متعلقات فعل اما میتونه جابجا بشه و داریم ها حالا اگر به واسطه جا به جا به جایی هایی که جایز است یا به واسطه فاصله شدن که جایز است در کلام پیچیدگی پیدا بشه کلام مبهم بشه در وهله اول که گفته میشه نفهمی معنا رو اینجا کلام دارای تغییر لفظی میشه میگه آقا چی شده مگه من میتونم خبر مقدم شم میگه بعد چی شده مگه نمیتونه بین مبتدا خبر چیزی فاصله شد بله همه اینا جایزه اما این جایزه باعث شده که این کلام بگید مبهم بشه اونجا باید کلام رو برگردونی گرش بازدونی حالا اگر یه موقع تقدیم و رو نمیدونم فاصله و اینجور چیزا جایز نباشه که اون دیگه اصلا میره جزء غلط تعریف یا از موارد غیر مشهور باشه و میشه جزء ضعف تعلیف نه نه اصلا همه چیش درسته ولی عقب و جلو شدن ها این موقعیت جوری که کلام در نزد اهل سخن دارای تغییر لفظی است ببین باز گفتم اهل سخن یعنی همه مردم هر کی اینو میشنوه عادی بشینه 10 دقیقه فکر کنه اینو بکشه این اونو بکشه ب... صافش بکنه تا بفهمه خب میشه ضعف در گفتار بش میگن تغیید لفظی اموری که مجاز است در ساختار سخن اتفاق افتاده و کلام را بگید دارای ابهام کرده کلام رو دارای ابهام کرد حالا یه مثال من بزنم میمثل. این شعر متنبی انا انا با همزه یعنی کیفه انا یکونا انا یکونا ابل بریت آدمو انا یکونا ابل بریت آدم. اینجا الان ابل بریه خبر کان مقدم شده. آدم اسم مؤخرش مؤخر. باخت باخت. مبعثان الان میفرمایید خبر مقدم و اسم مؤخر گان ما انام به معنای است استفهام بوده صدارت داره مقدم. معنام راحت فهمیده میشه میگه انا یکون اول بریه تا. یعنی چگونه بریه یعنی مردم. چگونه پدر همه مردمان حضرت آدم بود. چجوری میشه باور کرد همه این هم میلیارد هفت میلیاردی که روی کره زمینه از حضرت آدم تولید شده انا یک اونا اولوری یه تا آدم اون ورش مشکل نداره اون ور میگه چی؟ مصره دوم و ابوک و سقلان و عبوکه و سقلان سقلان با سه سه نقطه و با. و عبوکه و سقلان انت محمدون ابو سره میدونی یعنی پدر تو هم میدونی یعنی جن و انس دو مخلوق سنگین خدا از سقلان انترم میدونی یعنی تو محمدم میدونی یعنی آقا محمد پدر این شخص اما این میداریم سن نمیتونیم معنا کنیم. و ابوک و انت محمد. یعنی یه جا جایی صورت گرفته. اینطوری بوده. و ابوک محمدان. ما ابوکه مبتداست محمدان خبرش. خب بین مبتلا خبر میتونه چیزی فاصله بشه بله یه جمله واسطه شد و سقلان انت این و سقلان انت هم خبر مقدم شده بر مبتدا بوده و انت از سقلان پس اینطور بوده و ابوکه محمدن علامت سوال و انت از سقلان حالا ترجمه میشه میگه ما چجور باور کنیم پدر بشریت آدم است و پدر تو محمد یعنی ما چجوری باور کنیم تو از نسل آدم هستی پدر اولییت حضرت آدم و پدر آخرت هم این آقا محمد تو پسر محمدی یعنی انت ابن محمده یعنی تو از نواده آدم پسر این آقا محمد ما اینو نمیتونیم باور کنیم طور چجوری ما از نسل حضرت آدم و فرزند این آقا محمد بدونیم این نمیشه باور نمیکنیم. چرا و انت از سغلان زیرا تو معادل جن و انسی یعنی تو رو بذارم تو کفه ترازو، اون طرف هم همه جن نایمز رو بذارن آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری تو معادل همه بشریتی اونم نه بشریت بلکه بشریت و جن انس همه اونها تو یه کفه ترازو توری بعد اونها ما باور کنیم تو از نواده آدم و پدر دی. خب داشته متو کرد ببینید اون طرفش یه جمله معترضه اومد بین مبتدار خبر یه خبر مقدم مبتدا مبتدار رو خبر. ولی اگر گفته بود که انا یکون هبل بریت آدمون و ابو که و انت از سغلام همینطور قشنگ راحت ادام میفن اینو میگن تحرید نفسی همه کارهایی که شده بود مجاز بود اما عبارت رو دارای دشواری کرد دشواری در فهم خوب این تغیید لفظی کم و زیاد داره ببین یه مسقال باشه یا یه خروار باشه فرقی نمیکنه. کلام باید روان باشه سلیس باشه تغیید لفظی نداشته گرفتی چی عرض کرد؟ حالا بعضی این شعری که الان گفتم نسبتا راحت بود. بعضی شعرا هستش که من که مثلا میخواستم بیام به عنوان تغییر لفظی سقیل اونو بگم یادداشت کفه دستم میذاشتم که کدوم ببرم کجا چی جای چی اومده چی فاصله انداخته غده تا اونو بچینی به شکل صحیحش تا بتونی یه پازل مثل پازل گاهخواد این پازل رو خیلی راحت میشه. یه ذره فکر کرد تو ده دقیقه حل که یه موقع یه که شما یه صبح تا زر باید بشینی تا کمکم بگیری حل کنی فرق نمیکنه چه کم چه زیاد دارای بگید تغیید نفسی. است بعد معیار برای تقیید نفسی هم گفتیم چییه عامهی اهل سخنه اونو یه نفر خوب درکش پایینه نمیفهمه ملاک نیست یا حسن یه چیزی تعقید داره آمه اهل سخن عامه اهل سخن اینو نمیفهمند خوب اما یه نفر از خیلی تیز تا میگه اون باز ملاک نیست این دارای تعقیده حالا ولو و این آقا چون تیز هوشه و نمیدونم رو بر سخن است و اینا راحت فهمید بره. پس دارای تعقید لفظی بگید نباشد یعنی روانی در لفظ داشته باشه درست ش بعد گفتیم که این منشاش هم باید منشه تغییر لفظی در واقع موارد جایز باشه ولی اگر موارد غیر جایز باشه که اصلا کلام میشه غلط پنجمین شرط تعقید معنوی نداشته باشه تعقید معنوی نداشته باشه گاهی اوقات یه کلامی هست چینش الفاظش سر جای خودش همه سر جای خودشون از مشکلی نداره بقیه اشکالات هم توش نیست اما تعقید معنوی داره یعنی چی؟ یعنی اونی که اون آقا قصد کرده از این فهمیده نمیشه اونی هم که از این فهمیده میشه مقصود اون نیست. نشد تا حالا یه نفر بیاد به شما یص بگه که ناراحت بشید. بگید چی شده؟ بگید اینطور گفتی منظورم این بگید نه خدا، به پیر، به پیغمبر اصلا منظورم این نبود. منظور من اینه، اینو می‌خواستم بگم. بگید خب مگه مرده بودی، اگه اینو می‌خواستی بگی اینطوری بگو. وقتی میگی اینطوری بگو یعنی چی؟ یعنی کلام تو دارای تعقید معنویه. هرکی بشنوه این معنا رو ازش میفهمه اگه مقصود تو این معنا نیست و مقصودت اینه اینطوری بگو. یعنی ما قصده لمیقه اونی که قصدش میشه واقعه میشه اونی که واقع میشه و مقصود میشه واقع میشه مقصود بویده میشه این معنا کلام به گونه است که آنچه متکلم قصد کرده است نزد اهل سخن فهمیده نمیشه و آنچه نزد اهل سخن از اون کلام فهمیده می‌شود مقصود او نیست. اینجا کلامش دارای تعرید معنوی نتونسته معنا رو برسونه. اینجا باید کلام رو به ای چینش کنه تا بتونه معنا رو به خوبی بگید برسونه. یه مثال بزنم مثال رو شما داشته باشید به عنوان تغیید معنوی و بحثمون رو جمع کنم بنویسید این بیت رو ساعت لبو ساعت لبو یعنی طلب خواهم کرد ساعت لبو بو عدد دار بو اداد دار. ان کم، ان کم، لثه رو بو ساعت لو بو بو اداد داره. این وره هیچ مشکلی نداره سهت لبه طلب خواهم کرد شعر آشقان از قذل شاعر در زمانی که در فراق فراغ رو تحمل میکنه چرا فراغ رو تحمل میکنه به امید اینکه به وسال برسه میگه بوج در این روزگار ترخ از لغ بار دیگر روزگار چون شکر آید بدون بالون اون چون شکر هستش که این ترخ در از لغ رو تاید. این همین میگه میگه می صحت لب با بُعدت دار بودت دار عد دار یعنی داره کن من دوری خانه شما رو به جان میخرم. این فراق شما رو به جان میخرم. با بُعدت دار عن دوری خانه از شما فراق از شما رو به جان میخرم. چرا لطق رو بود برای اینکه شما نزدیک بشید به امید اینکه شما نزدیک بشید من این فراغ رو به جان میخرم تا به فسال برزید خوشه اینجاش خیلی قشنگید مقصودش چی بوده؟ مقصودش اینه که من عاشق در زمان فراغ نمیبردم و از کوره در نمیرم تا اینطور نمیست که آنچه از دیده رود از در رود نه من دوری شما رو به جان می‌خرم تا روزی رسد که در کنار شما باشم خیلی خشنگی ساعت کن و بودت دارن کن اما مصره دفنه و تسکو با و تسکو با و تسکو عینایه اینایه اد دوم لج مدا لجر مدا و تسکبو عیت دوم لج مدا شاعر در فراغ چه میکنه؟ گریه میکنه می اصلا هست گریه ع شاق مشهوره میگه و تک تسکبو یعنی جاری میسازد روان میکنه میریزه سکه و یسکوبا یعنی ریختن ریختن مایات آب و عینایه عینایه عینان بوده یعنی دو چشم فایل تسکوبوست فرو میریزد دو چشم من از و موق تمامی عشقاشونه. هر هرچی عشق دو دو تا چشمم هست میریزه تا بخواهی گریه خواهم کرد یعنی در فراغ گریه سلاح منه گریه میکنم عاشق گریه میکنم این تخلیه شد برای اینکه توان پیدا کن و پس که با حینایت حالا عاشق گریه میکنه تا به چی برسه با توجه به مصره اول تا به وسال برسه به خوشحالی برسه به خنده برسه دیگه یعنی گریه را در فراغ شما به جان میخرم تا به خنده وسال برسم منظورش نید تا به سرور برسه خوشحالی هم به خوشحالی برسم پس مصر اول میگه دوری شما فراغ شما رو طالبم به جان میخرم تا روزی شود که در کنار هم باشید و در فراغ شما رودهای عشق از چشم من جاری میشه تا سرور و خوشحالی وسال به من برسه ولی به جای این که بگه سرور و خوشحالی به من برسه تا بگه که من خوشحال بشم گفته لتج مدا تا دوتاچشمم جامد بشه از دا که باید بگه دو تا چشمم مسرور بشه خوشحال بشه خندان بشه اینو باید میخواسته بگه اما لتج مدا گفته لتج مدا جمد یه نفر میخواه نفرین کنن میگن جمد الله ای نی. خدا دوتا چشمش رو جامد کنه یا تو دعا داریم که اللهم اینا جامده. خدا یا ما به تو پناه میبریم از چشم جامد چشم جامد چیه؟ گاهی اوقات دیدید یه نفر قصد تو دلشه قم تو دلشه حسابی گرفتاره مثلا یه پدر و مادری برچه از دست داده مادری گریه میکنه زاری میکنه خب این تخلیه میشه اما پدر تو پرسد یارا یه عشق گرفتن نداد نمیتونه گریه کنه عشق نمیاد در چشمش دل داره میتره که چشم یاریش نمیده اینجا میگن اینوه جامده چشمش خشکه قصه تو دل این دق میکنه پس اگه بخواین ترجمه کنیم این میشه مثل دوباره و فرو میریزد دو چشم من عشقها را تا این دو چشم جامد باشد و من دق کنم درسته که اینه نمکات بگه شاهرون پس داره میگه دوری را به جان می‌خرم تا به وسال و خوشحالی در کنار شما برسم این برام باید بگه گریه هر قدر هم باشد در فراغ شما برای من قابل تحمل تا چشمم خوشحال به دوایت شما بشه منظورش این بوده تا چشمم روشن به دیدار شما بشه خوشحال به دیدار شما به تول ترجمه از جمود عین یعنی اینکه چشمم خوش بشه قصه تو دلم داشته باشم دخت کنم این اونی که مقصود شاعر بوده این که به سرور و خوشحالی برسم و در کنار شما باشم اونی که ازش فهمیده میشه تا دخت کنم و بمیرم و این دوتا با هم جور در مصره اول پس اشکال کار در هیچی پس و پیش نشده اما از لتجمودا فهمیده میشه دخ کنم و بمیرم ولی مقصود او بگید این بوده که چشمم روشن بشه و دلم خوشحال بشه و لبم خندان به قرینه مثلا اینه میگن دارای تحقیده بگید اما شاهر میگیم تو میخوای گریه کنی تا بمیری؟ دخ کنی؟ میگه نه نه نه مگه ندیدی یو اگه اگه اینطور بود از مرز باشن اینطوری گفته او درست بود. چه تحقیده؟ مرد اونی که مقصودش از کلام فهمیده نمیشه اونی که از کلام فهمیده میشه او نیست. این تا اینجا پنج شرط فساحت در کلام رو گفتم و مثال زدم و توضیح دادم یه نکته کوچولی باقی نمونه انشاءالله برای جلسه بعدمون میگم فساحت کلام تمام میشه که یه شرطی گذاشتم که قبول نمیکنن کنن بعد وارد فساحت متکلل میشیم بعد وارد بلاغت و اسلوب کلام مقدمه تمام میشه الله که خداوند به شما عزت تمام بده من هم آرام صحبت میکنم روان دارم در خدمت شما هستم که شما بتونید انشالله این مباحث رو هم فهمش مهمه که برای شما فهم بشه که بتونید در زندگی خودتون هم ازش بهرمند بشه همه شما رو به خدا میسپرن موفق و معیید و منصور باشید انشالله تا روز شنبه به شرط حیات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته